اللهم صلّى الله فاطمۃ بعابیها و بعلها و بنیها و السر المستودعیفیها و عدد ماخات بیه الموج ازب اللهم من الشیطان اللعين الرجیم بسال الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ابو عبد الله و علی الارواح الکتاب بفنائك الکیم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار فلا وجد الله آخر الاحتم منی لزیارتکم السلام علی الهسین و علی ابن الهسین و علی الولاد الهسین و و اخو حسین اباص و اخته زینب الکبرى عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما باران از اینکه دوباره در خدمتتون هستم خداوند متعال شاکرم خب ما جلسه گذشته بحث صلوات مستقیم رو بحث کردیم و اینکه شرط خلقت عبودیت بود باید پذیرفته میشد بعضی گفتن خود ما این نوع عبودیت تو رو قبول نداریم خودمون دوست داریم و خداوند متعال هم نپذیرفت گفتیم موجودات دو دسته شدن مجبور و مختار در مجبورها چطور این بروز کرد در آفرینش در مختارها چجور بروز کرد یعنی در جن و انس اولین کسی که لو رفت که اون روز علست بلهی که گفته بود علکی بود ابلیس بود و بس هم خورد که همه را به راه خودش ببره الا افرادی که خالص بشن و دیگه دستگیری برای شیطان برای خودشون نگذارن گفتیم سرات مستقیم سرات انبیاء بود و اینا تابلوهایی بودن که در مسیر بودن و باید با اون تابلوها پیش می رفتیم یکی از بزرگترین دوراهی های تاریخ کردیم که بیشترین ریزش رو در طول تاریخ داشت دراحی قدیر بود دراحی امیدل معامنه بود که به روایت بردار اهل سنت هم میگه حمل نعم موفق شدن یعنی. برقی همه آتش همه این کتابی در سند در کتاب خود این بزرگاران وجود داره. و قابلیت ماسمالی کردن هم نداره تمام اصحاب الا حمله نه هم حمله هم تداد رو میگن که از گله بازی گوشن گیرن بیرون گنسال به اصل گله چقدر؟ سه چهار تا که چپون جمعشون میکن یعنی مثالی است که عرب استفاده میکنه بر انگوش شما و واقعا هم همینه از علمای ما نزدیک نهایتا هشتا تا صحابه پیامبر رو ذکر کردن که اینها باقی موندن برا در اون واقع که در اونجا بود که فقط چارپنی نفر اکسریت رفتم مثل عزت حارم که قرآن میگه با این که, هفت و... با این که ده روز از وعده الهی گذنش تا سی روزش هم خوب بودن فراموش کرد اکسریت حارم رو گرفتن زدنش پرتشکنه گوشه میخواستن بگوشن چون اگه حرف روزه میگوشن این آیا قرآنه دیگه چکارم صورت عرف صورت تاها این رو برس و عرض کردیم میار و خطکش اهل بدودن یعنی خطکش نمره 20 اونا بودن هر کسی بتونه بیشتر نزدیک بشه به اینها جوش بهتره خیلی بعضیان بودن خیلی نزدیک شدن مثل حضرت عباس علیه السلام خیلی نزدیک شده به معصومین یه شب در موردشون ویژه صحبت کردن این شب هم من دیشب دیشبو جمعش بکنم 4-5 تا نکتهشمون ببینید قرآن سوره طه 120 میگه فوس وس الیه شیطان شیطان وسوسهش وث کرد حضرت آدم قال یا آدم گفت اي ادم هل ادل لک علی گفت میخای تو رو راهنما باشم به سمت شجره جاودانگی بری که حالا اون درخت در نظر گرفتن و ملک لا يبلا. و اون ملکی که توش بلا نیست گفتیم از قدیم گفتم بله و بلا بشر بله گفت بلاش شمون تو میگفت میخوایی برسی به اون بهشتی که از اتا توش بود بهش اصلیه نبود یه باغ خوش آبا بود خب گفت میخوایی به اون بهشت اصلیه برسی بدون ابتلا گفتیم خدام گفتم گفت من با این خطکشی که دارم همه تون رو میزنجم ولو پیغمبر باشید چهارده نفر دارم با اینها چگاه میکنم میارم بایدم همینجوری بعض از ما هم هم همین جوری ما میگیم برسیم به بشن درست میکنه خدا انشالله اما دیگه درست میکنه اون را انشالله نگه این خبران میزه کارت بلنگه با <باها> صاف <جساف> میکنن بعد میری از زن تو عبودیتت مشکل داشته باشی دروغ گفته باشی قیبت کرده باشی اینا نه حق و ناسه بزبش. خدا حق و شهیدم میگیره گفتیم امیر فرمود بعد اون چهار دسته که آوردیم گفتیم هدف هدف درست، مسیر درست انتخاب کرد رانندگیش گفتی که عده هستن هدف و درست انتخاب کنن رانندگیشون بده. چهار مدل پیش می دیگه رانندگیشون بده. اینا اون دا چهج باشه حسصاب میشه. باید رانندگی یاد بگیرن بد برن. پااک میشن بعد میرن. یا تو این دنیا با مسائل پاک میشن مشکلات برش پیش مید. یا لحظه موت سکرات موت یه پوستی ازش کنده میشه خدا دوستش داره این دنیا حساف کنه. یه پوستی ازش میکنه بعد مییرون. یا این فایده نداره تو برزخ تا روز قیامت تو جهنم برزخی خواهد بود تا پاک بشه خود برید دعا کنید که این دنیا پاک کنن چون هر چی بگزره بدتر سختره بعضی هستن اونجا هم جواب نمیده کجا محشر تو اون روز محشری که شلم شوربا یا هیچ کیو نمیشناسه یه پوست از ازش میکنن بعضی هستن اونجا جواب نمیده به اون دیگه چی اونا باید برن جهنم میرن جهنم معادل گناهی که انجام دادن پاک میشن بعد میرن بهش تا زینا گفتیم کسایی ان چی راهو درست انتخاب کردن آن بعد عبودیت کردن یعنی قبول داشتن که مسیر عبودیت مسیر اهل بیت است گناه کرد گفتیم چون مسیر علی ابن نبی طالب دروغ نیست ریا نیست حق الناس خوردن نیست زنا نیست شرب خمر نیست نعوذ بالله اینا باش حساب بعد برمیونن اینا اهمیت دار اینا مهم ما ها اینا ال نشه بازو فهمید امیرالمومن فرمود تو شب احیام عرض کردم امیرالمومن فرمود برخی از محبین ما هستن 300 هزار سال عذاب می‌بینن بعد فرصت شفاعت ما میدن اول پاک بعد اما اینا خالد در جهنم مطلقا نمیشه بالاخره میره بهشت اما افرادی داشتیم که اینا بعضیشون چی خالد در جهنم جا. تا ابد تو زمین فهمیدین تا ابد چون هم برای چی دروغ گفت؟ و روز زمین اومد دروغش رو چکار کرد؟ اجرا کرد. حضرت آدم میخواست سریع برسه بده. گفت می‌خوای چجوری گبیا شبیه ایناشو؟ اون شجره‌ای که رفت سمتش، شجره یعنی فقط درخت؟ میان شجرنامه‌ت وردویی میری تنه درخت بر طرف میاری اون شجره شجره طیبه و شجره مبارکه اهل بود. رفت اونجا تازه ایواش آشکار شد. چون خوشو با کی قیاس کرد؟ با رسولullah. شاید ای رو داد دارم، شاید, شاید کجکولیگی دارم باید دا درست انداختش رو زمین رو دار ابتلا تو زیارت جامعه کبیره به اهل بیت صفتی که داده شده اینه البابول مبتلا یعنی اصلا وسیله ابتلا شماید. اون خطکشی که میسندیم شمایید هر چقدر بینا نزدیکتر نمره بهتر گفته اینو اون برقه امتحانی که تو امتحان نهایی از آموزش برد بردش میفرست این برقی میرسه بر معلما و کسی که میخوان برق تصحیح کنن میگن عین این این, این مبنس آیا میشه عین اون فرد و وسیله آزمای شد نه چون اگه ش... بتونی به یه نفر برسی ازش چی میشه رد میشی او شخصت باید آرمانی باشه فلذا معصومه اما میتونی بسیار بسیار بهش نزدیک بشی مثلا که زمین تو ریاضی میگیم یه نمودار بی‌نهایت بار مجاانبها بی‌نهایت بار نزدیک میشه، اما هیچگاه اونو قطع نمیکنه ریاضی خوب میتونه اینا برامون جا اندازه این یا زیر مجموع های مجموعه, مجموعه شماخوا اسم ببرید مثل این مجموعه یک و دو میگید یک دو یک و دو دو و یک یکیش خود همونه. درسته زیر مجموعه هر مجموعه چی؟ خودشه؟ اما این اون نیست. خودشه اما این اون نیست خیلی شبیه شده اما اون نیست عباس هیچگاه چهارمصون نمیشه.له یک اما خیلی نزدیک شده. خیلی تا جایی که اصلا. معصومین میخوان حرفی بزن سخنی بگم به جگه سراغ معصوم برن از اون نقوم میکنن یه عجیبه تابلوهای این مسیر گفتیم چیان؟ اهل بیتن دلیل در زیارت جامعه کبیره مال اماهادیه اصفاً بخونی تفسیرش گیراوردی حتما اصفاً اصلا من میشناسم چه سری که از سال 60 قردهی زیارت جامعه رو تفسیرش شروع کرد هرنو تامونه شد آقا شما یه کلمه میگی دیگه اون کلمه پنجاه جای قرآن اومده باید بره اون آیه رو بیاره اصلا داستانیه دوستا موقع میسن چقدر حقیریم در شناخت اهل بیت هیچ چی نمیدونم از اینا اعلامن لعباده میگه شما تابلوهای هستید برای اعلام اعلام یعنی چی علم اعلام یعنی توی کتابا بخش اعلام شنه چی شناسنامش میگه میشناسونه میگه اعلامن لعباده اون تابلویی که من بدونم آقا من تو مسئله که دارم میرم چقدر مونده گردش خطر در گردش به راست سرعت ادکسر فلان اینا میگه شماید جالبه اونجا گفت شیطان گفت حال ادل که میخوای راه نمایید کنم به اون شجره و ملک لایابلا که راحت بری اونجا ادلا علی صراطه بص صراط جامعه میگه شما همون ادلا این اون گفت ادل همون ادلا شماید الا چی سراته یعنی اصلا این سرات به بهش ختم میشه یعنی بهتون بگم بهشت روز زمینی هم میشه رسید. بهشت, زمین هم بهشت زمینی همون بهشتی که هم حضرت آدم توش بوده میشه رو همین زمین ساخت به دیگه مردم مثل پدرشون جدشون حضرت آدم که درس گرفه درس بگم یعنی هم ملک مهدوی همینه هم. وسیلت الارزوانک نشدیدیم؟ میانون وسیله به سمت رزوانتو رضایت دو حضرت رزوان بلحقی اسم بهش میدونن بلحقی اون فرشته کی چهره در بهشته وسیله که میتونی ببینی فقط شماهای تماشا رو گشتم نبود نگرد نیست آقا حالا شما بدی آدم 18 پیدا کنید او تقلید کنی اشتباه کنه زرنگ میکنی چون دو نومه خود غلط داره ممکنه تو تقلب میکنی این نفر تقلب میکنه بهترین تقلبی که شاید اول کلاس تقلب کنی برید آگهی دو تا سالم ببینه و دو تا عدلی اون, غلط های اون بود. آقا مولانا مثلا الگوی خوبیه مولانا شخص بزرگی بود اما الگو برای دین مداری نیست طریق چی میگم؟ اشعار شون بخونم خیلی اشعار زیبایی تو خرمان استفاده میکن اما الگوی نیست چیتون شما بگی الان مثلا مولانا بذار جیره به ما تو حرفاش پنجات ایرادت اصلا حدیثی و قرآنی هم به شما نشون بده خب قرآن گفت کانالکون فی رسول الله عصبتون حسنه اون پیغمبر بزن، اون اصفه حسن شماست همون رفت میخواد ارو برقی هم بنویسه، ارو چی به ارو برقی شاگرد بل نه روی برقی یه آدمی که حالا خوبه، اما یه دایی آخره. چون این... اینا آدمی بزرگه بودن به یه حقایقی دست یافته بودن اما لسان صدق نداشتن، قاطی میکرن یعنی موقع گفتن، همه علی نمیشن که لسان صدق باشن خاطی یه چیز دیگه میگفتن چطور بهت میگفتن بلد نبودن مردم حرفشون انتقال بدن مثلا منصور میگه ان الحق خب دارش زدن. این حرف آقا یالا بگیم آقا این حرف منظورشه خب مردم نفهمیدن منظور یعنی نمیتونه انتقال بده این هنر میخواد میگه شما ترنسلیتور باشید بتونید مترجم بشید انتقال کار هر کسی نیست حالا یه نفر میخواد بریم مثلا سعدی رو مولانا رو بزاره عین القزات همدانی رو بزاره به زمان که توام ازبارت کنم خب اما خود داریم مثلا خود اینالغزو قاطی کرد در اوصاف شیطان در وصف شیطان سخنها گفته میگه شیطان مولا المبهدین بود خدا گفت به غیر من سجده کن گفت من سجده نمی کن من فقط تو رو در تو کنم خب اینجوری باشیم وحاوی هم همشون مبهدن خداش میگه بابا با وسیله سم وقت تقوه الله الوسیله با وسیله سم تو من ب میگه ناخوده تو خودت خداوند نمیفهمی ما میفهمیم ما اینجوری دوستو ارسل کردیم خدا به شیطان گفتم من نمیخوام اینجوری که تو منو ببینی من با تعینات چهجوری من بپرسی نگا تو تعین کنی که راه عشق اشخا... راه عشق و معشوقه تعین میکنه عاشق که ناز مال اونه نیاز مال توه بی نیاز الله الصمد چه دیگه جبرئیل میاد در ما داریم که جبرئیل و بر... گودال بر حضرت وارد شد گفت تمام همه چی امتحان تو پس دادی گفت برو بین من ربم حائل نشد برو کنار حائل نشو به جبریل خیلی عجیبه موحد وقتی در دعای عرفه صوا پیشنهاد میکنم در ایام محرم حتما تیک تیکای عرفه رو دوباره بخونید حتما دوای عرفه یه تای میداری باید تموم بشه آ شلوغ رفتی توی مدائین نشستی وقت نمی کنی دوای عرفه رو در خط در خط جدا کن من نمیم چند خطه قشنگ هر شب رو بخون بعد ببینید چی میگه اون موقع تازه روزه شروع میشه خودش روزه خودشه خونده میگه با لبهام با پره بینیم، با دند وسط خوندها چی داره میگه همون هایی که میگه من این گوشت تنم امینم میخوام له بشه تو. اصلا عشق بازی داره میکنه وابدالله با خود خدا ولی کنید بقیه ماجره ها تمام کمون و مکان دستشه جنیان اومدن میگن میخوای کمکت کنیم فرشته ها اومدن جبریل اومد گفت اراده کنید این آدن زمین و زمان اومدش آب میخوای حسین ف نه نمیخوام کارم از آب گذشت میخواهم اینجا دریا کنم خب یعنی اصلا همان با, با رگ گردنش صحبت میکنه حضرت برای چی از ورید خودش میگه برای چی داره میبینه و در خون غلطیدن لله برای خدا اینا اینا اینجوری بودن که شدن اون اگه مصیبت هایی برای اهل بیت وارد شد ما کافریم پیرورد نوت ساله مرده بچه هاش نشستن ای خدا این چه مصیبت ازمایی بود ده آلزایمر داشته مرداشته بیبی از زینب چه کرد در کربلا شاهکار بعد میگن اون شب نمازه شبشو نشسته خوند یعنی بازم خوند جسم دیگه توان نداشت نمیتونست سر پا بخونه بدن اجازه کشش نداشته نشسته خوند اش اینا او ببین ما به حضرت زهرا به تو سلام هایی دارم حضرت زهرا سلام الله علیه هست میگیم سلام بر تو ای کسی که خدا تو را آزمد قبل از هم که خلقت کند اگه اینا این شدن دلیل درم اونجی نیست که ما چرا این چهار چون خود گفتم که مخلصتم هم خدای ها هرچه تو بگی من که نمیتونم راه اگه تو معشوق این جریانی و من به تو عشق میبرزم و اون روز اولم با عقل و شعور انتخاب نکردم کان زلومن جهولا با عشق انتخابت کردم خدایا اون بار امانتو که میخواستی بیاد تمام کائنات عرضه کرد هیچی جیگر نکرد بیاد جلو انسان قبول کرد آسمان با امانت نتوانست کشید. خم کرد وجودش لرزید. من دردانه بدمه تعهد کردم که به پایم اهدم با همه جان و تنم با همه سلولهای بدنم ولی اکنون زندانی سلول تنم خراب کرده. و سمند تدویر بر دل گیتی تا و شگفتا که دو گندم دو جهان فاصل است. اینجا اینو گوش کن. با عشق خود انتخاب کرد. اصلا محرکه خلقت عشق بوده عشق محبت بوده اصلا دنیا الان لیاقت حب امام زمان نداره که آقا نمیاد نمیتونن محبت آقا رو درک کنن محبت امام نمیتونن مردم بفهمن امید داشت به هدایت و شمر دیشتا نمیتونن بفهم. ماها ما حقیقی ما قد و قبارم نمیتونیم بفهم درجه از بخششو که علیه ابن عبی طالب میگه به اون زاره به من این شیر آوردن بپرسید. نمیفهمیم مثلا اگه الگو قرار بگیره بریم تو اون فاز حب و محبت یحبهم هم به یو اصلا همه چی عوض میشه همه چی میریزه به هم دیگه اینا آشق خدا بودن عشق در وجود این چهار چارده بنده الهی تجلیش هر از ببین چی زیارت جامعه کبیره باز میخواه میگه خلق کم الله انوارن خدا شما رو نورهایی آفری فجعلكم به عرشهی مهدقین حدقه دیدید دیدی؟ به اینطوری نگاه میکرد مهدقین گرد و گرد عرشه هم بود یعنی چرا این چارده تا این شدن دلائل داره اما به من ربطی نداره چون تو گفتی میامش. آقا این پیغامه به من مخرج چرا این پیغامه به من چه؟ شرط اصلی نیستش که. بیا حسودی کنم به کی؟ به عامل هدایت. چقدر احمقان است. چقدر احمقان است. اما حسود... حسودی هم یه يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. حسودی که چرا خدا فضلش بیشتر داده؟ ها به شما چه؟ اصل حسادت نمی گنجه در حوزه کار احله بیت. نمی گنجه نداریم شیطون رو میگه کانمینال کافرین دیشب گفتیم یه سوال. شیطون کافر به خدا بود جواب خدا قبولش قبول داشت. خدا رو قبول داشته و داشت. آدم قبول داشته قبولش هم قبول می گفت خدا تو عادل نیستی چرا اینا رو آوردی از من انجلو؟ جلو یک من هم به وضعیت کردم دو میگم امامت رو قبول نداشه کی نفر جانشین خدا رو زمین بشه خب پیغمبرام چه مشکل نداشه خب امامت یعنی بم پیغنبری خری چرا مشکل داره که دین رو بیا رشته با وقت نکنید خب مفهوم امامت یعنی خلافت الله علی الارض مشکل داره دقیقاً همون دو تا اصلی که تو در تشیع اومده شیطان کافر به خدا نیست آیات قرآن میگه خدا رو قبول داره برعکس خیلی ادعای توهید میکنه مثل وهابیا میگه بقیه مشرکان من فقط خداسشی کردم از این وحابی ها ولد شیطون هستند. کافر به بلایت احلویتون. بگرنه برقیه چیزار که قبول لشه از از از از توی یک دو تا از سخن گفتم جا داره چیز اینجا باید خرجش کنم. سوره نبع آی آخرش؟ گفتم مجبورم بگم. سوره نبع آی آخر یوم مر او ما یا اومینظر و مرعومه قدمت یده ها اون روزی که مر انسان ما میبینه یعنی نظاره میکنه مقدمت. اون که از قبل چیکار کرده؟ فرستاده. تقدم. از قبل فرستاده. شما دو نوع اعمال دید. یه اعمال ما تقدم یه اعمال ما تاخر. ما تقدم زودتر میفرستید. ما, تق... ما تاخر میاد. درسته؟ مثلا یه مچه دی میسازید. خدا بیامورز میشی. خود همین چیز نماز بخونه سوابه یا یا سنت غلطی میذاره یا حرف غلطی میذاری اون بن‌مبنا چند نفر بی‌دین و ایمون میشن همینطور تو گناهه بخاطر همین تو جهنم یا بهشت برزخی بعضی حالشون رو عوض میشه جاهشون این اون اعمالی که میرسه ها رو عوض میکنه زیاد نقد شده که دیگه الان محل بحث ما نیست اون شبهه یا اینا رو گفتم یه ای نمی‌خوام میگه انسان اون روز فقط ما اونی که اثر ما تقدمه فقط لحظه مرگه چون هنوز متأخر، چی؟ نه تا اون لحظته پس این یوم ینظر المر یوم اون یوم روز قیامت نیست چون در روز قیامت متأخرم چه چی شده؟ حساب شده فقط ماتقدمه یوم ینظر المر مرد میبینه مر یعنی انسان، ما قدمت یده اون چرا که فرست داده جلو یده جلو دستش میبینه و یقول الكافر و کافر میگوید معنی کفرالا فهمیده چی شد؟ بله ما کافره به الله هم داریم ما خدا هم قبول نرمید خیلی با درم بیه خوده با درم شیطون طبقه چارم میسوزه کسی از اون بدتره؟ هم هفت طبقه ببین خدا رو قبول نره برخی میگن حتی امید به رحمت خدا هم داره خبر داره او چرهم و راه همینیه. خبر داره برزه میگن این دعوی رو انداخته میگه من ممکنه. اما خدا برای این که آبها که برزه دستش تو قرآن قسم خورد. سوگند خورد که می دارم جهنمتون. دیگه ریخت به همه چی. این بگیم. و یقول کافر و کافر میگه یا لیتنی کن تو ترابا. ایک کاش خاک می بودم. لحظه ملی یه چیزی برایش اثبات میشه که میگه کاش خاک می بودم. ما می برزیدیم چه دردابره میگه و آدم می خاک می بودم. چرا میگه یا لایتنی کن تو حجرا سنگ بودم در داریم تو قران وقود و الناس والحجره چرا میگه کاش چون میبینه عجب وقتی میگه ای کاش تو را بودم یا لایتنی کن تو ترابا یا لایتنی کاش ای من کنتو می بودم تو را با خاکی برای چی برای اینکه میبینه ابو تراب کیه انا و علی ابا باخاذه الامه منو علی بابای این امتیم اون موقع میگه ای کاش بابای ما علی این پدری چیزا مذهبی نه الزام مثلا یه سادات می میبودم نه انا و علی ابا بحازل و امت. کل امتی خب میگه ای کاش بابای منم علی یه لحظه مرگ اقوان تعلیم نبی پیامبر بسواد بشه روایت داریم از خداقا امیرالمومنین میفرما هیچ مؤمن و کافری نیست الا اینکه لحظه مرگ اقوانتان داره حساب میشه آیه قرآن داره میگه ها وقتی میمیرن از شکی که در مورد مسیح دارن بیرون میاد. لحظه مک حقانیت مسیح برایشون اثبات بشه اونا بنی اسرائیل مام چی بنی اسمایل اینجا هم اتفاق می افتد اینکه لنگره زمین و آسمونه اینکه خط بین آتیش جهنمه چه جنان جهنم بهشته همینه علیون حبوه جنه این سپر قسیم النار و الجنه تقسیم کنه بر مبنای یعنی چیه یعنی عبودیت خدا تموم شده شیطون کافر به خدا نیست که جارب دقت کنید بعد تازه نمیگه کافر کافرین من همین از کافرین یعنی این کسای دیان بودن فعلا ایلو رفت بقیه تو راه چه, ب... چه از جن چه از انس خیلی کافر شدن اما میاد ظهوری که بس از او همه مومن یعنی اونایی که تو جهان هستن اثبات میشه برایشون و بعد رو بچه‌هایی که به دنیا میان در ایمان محض دنیا میان خیلی جالبه خوشبال اونها نه بیل زدن نه پایه انگور خوردن تو سایه اونا دیگه چیه باشه اونم بستگی داره تو عالم از چیک بودن اونها بهتون بگم یعنی اونا آدم عادی نیستن اشتباه نکن امام صادق میفرما شیعیان ما رو از فاضل از اضافه گله ما آفریدن یعنی چی یعنی از قبل معلوم شدین اینا شیعه خدا رو خبر داشت برای هم باید روزی صد هزار بار شکرد که الحمدلله, الحمدلله. اما خدا وقت کزاش اگه خواستی برگرد بسو. کسی بودم برگردن؟ بله برگشت زهیر برگشت اصلا که عربلا شیشتون که همه اینا رو داره رابر برگشتن هست یه نکته من بگم اینجا یادداشت کردم. این که از مقام حضرت زهرا عرض که جلسه قبل و اون نکته رو گفتم که تو یه نگفته بودم نکتهش سر اینه یه وقت اشتباه نشه که بگن آقا یعنی مواج شب پیغمبر بالاتر نخیر شخص اول و فرش آقا رسول الله مشخص بلاقی خب مونچوها اینا هر کدومش واسطه یک چیزن ربطو بخونید میگه به واسطه زهرا این کارو کردن به واسطه حسین این کارو کردن به واسطه حسن این کارو کردن یعنی واسطاً قبل از این عالم بودن خدا خواسته که در این کالبود جسمی هم بیا رو زمین و برعکس از همه سخت‌تر برشون گذاشته اما همیشه این آخرین کلامی که عبدالله استفاده میکنه در گودال اینه یه بسم الله و بالله و فی سبيل الله و علی ملته رسول الله به فکر از ملته رسول الله رازی تو به رضای تمام رازی هم به رضایت تو هر از دوست رسد نکوست اما شادی برای آرد چه تفاوت داره؟ سادیا باده بده شادی آن این غم از روست. گفته. خو؟ گو بر رازی هم برزاید. حالا این مسیحی هم یه حضرت مسیح به سریب کشته شده. ما قبول نداریم. حضرت مسیح کلمت الله هست. بزرگه. حتی برقی قائلن به مقام امامت هم رسید حضرت مسیح. قیامبری به امامت هم رسید. اخی نوعی هم. تو انجیل نوشته حضرت مسیح آخرین جمله‌ای که گفت این بود خدای خدای چرا تنها گذاشتی اصلا اگه این درست بشه شما بیاید حسین ابن علی رو با مسیح قياس او اونم یه رزی تو برذار ایل ایل ما شبختنی این لفظی که استفاده می‌کنه به آرامی حضرت عیسی چرا تنها گذاشت ما قبول نداریم اما ما اگه شما اگه خودتون قبول دارید به سریم خجالت شد او خجالت نمی‌کشیم من خجالت می‌کشم چیزام چی چیزی میگفت پیامبر معصوم ما نمیپذیره ما از از زاینه ما حرفو نذرد از از ما این حرفو نزد رفت دستبر زیر پیکر متراور پلو گفت اللهم تقبل منا حاضر غلی شره ببخشید همه چی بر اوه چون ما اهل بیتو میگم برای او گفت تقبل منا هذا القربان ازل قربان ببخشید ذبیح و حسین یعنی چقدر شد. حالا که حسین ابن علی تقدیم شد حضرت زینب میاد میگه ببین این سختترین ماجره رو از مصادره میکنه میگه این این تقدیمی ما به خدا از سوی افرادی که عبودیت تو رو پذیرفتن و امامت رو پذیرفتن ما بیشتر از این نگه دست میبره تموم شده اصلا شما از حضرت زینب میگید شما یه یه جاشنده وش اسم دو تا پسرش آورده باشی دو تا پسر مادر شهیده دو تا پسر داده نمیشن همه رو بدرقه کرد جز دو نفر کیا همین دوتا پسرش گفت عمو اصلاً خجالت نکشه وقتی دلش بگرده بگه ببین اینا اینا قول حضرت میزنم معصومه نه رسیده به اسمت اکتسابی یا نه شبیه شده یا نه بله چرا شبیه نشده الگوشکی حضرت بر امام زمانش و بین در و دیوار قرار گرفت غور قر گفتم اینو بارها گفتم بلکه حضرت فریاد میزد تو خ... کوچه وقتش هم میبردم یا علی که خیری و شرکه خیری خیرت خیر منه شرتم خیر منه اینا بیشهورند تو که شر نداری که هر چه از تو امام معصوم سر بزند خیر است اینا نمیفهمند اینا نمیفهمن تو همه چیز خیر علی آیه قرآن داره ائمه یهدون به امرنا و فعل الخیرات امام هایی که هدایت میکنن به امر ما و ما بر آنها وح کردیم فعل خیر رو نمیگه افعل الخیرات یعنی کار خیر رو بکن میگه کلا کار خیر رو به اینا وحی کردیم بشینن خیره پاشن خیره همین چیزه خیر میگه شر که خیر اینا نمیفهمند. مسئله امام مسئله کعبه باید بری سمتشی که پیغمبریست بیا سمت تو تو باید بری اونور بر. این امامت فهم نشد در طول تاریخ مسئله چی؟ قبله هست قبله حالا فردا انشالله وقت بشه اون در مورد حضرت عباس و مادر کعبه و قبله که حضرت بحث میکنه حضرت عباس بحث میکنه خیلی زیباست در مورد امام و کعبه صحبت میکنه از لسان عباس شنیدن خوش است. یه امام شناس در امام شناسی بیست گرفته به خاطر همین امام شناس قبلی خودش مقام بالایی داره از زهره نمره بیست بهش میگه ببینید امامت چیه که از زهره با اون شعن پا امام زمان چهجوری رو میسته؟ پا امام زمان خودش که چه هم سکوت امد. وقتی زاربان میخواستن بیان میخواستن مصادره سیاسی کنن دیگه اومدن سر بزنن به حضرت. پیغام فرستادن حضرت فرمود من نمیتونم اینا داریم. نه چون منو زدن چون چرا تو باشده حضرت عمیر فرمود سلاح داریم اصلا با چون تو نمیتونم خیلی حرفا ها اصلا با یه نفر به اون اخ کلن کاتش میکنیم میدونم کنار میگم سر قبرم نه یا سر قبرت نمیام گفت آقا اخه آقا جیزه آسانه تحملوی شان برای امامه حالا امام چی میفهمد آقا مامساده؟ میگه ما تو قرآن حجیم سیامیم قبلهیم سلاتیم وضوعیم اینا همه یعنی ما می تو قرآن اینا رو دیدی یعنی ما دشمنان ما حرامن ما حلالیمون ها خوکن بولن قاعتن این مطفوع یه تو قرآن اینا رو دیدید؟ خ خب؟ اینا این یعنی دشمنانمون چقدر جلمون خیابونمون جادم که گفتیم در طریق جل بددم صحبت کردیم گفتیم یه گاردی داره بیرونش چیه؟ دشمنه چتونخواد ببرید اونجا عقدا ن لا سرات من روی این سرات مستقیم میشینم می کشمتون بیرون. جا میخواد بری برو تو این نباش هرجمخواه باش. به خاطر همون طرف همون تعریف می از این مستبسریه آقا من از موقعی که؟ برگشتم این طرف بابام در اومده قبلا راحت میرفتم لب دریاب این هایی بود و مثلاً با انگار نگم میگه الان که اومدم این طرفی شدم نمیتونم را برم تو خیابونه که معجبه تو خیابون داره میره <تصفيق> گفتم موقع با کاری نداره تو خط بودی برای شیطون الان اومدی این طرف بیچارت میکن پوستتو میکنم با, با تو کار نداشت الان تازه با کار داره الان بسانت برنامه داره. فردز اگر تو مسیر مهم رفتی دی دیدی بر مشکل پیش نمیاد نمیدم شیطون وسوسه ند میکنه یا چی چی اینا به تو کار مشکل داره در مهم شونسی توهمت تو مسیر بودن زدی میاس رو پوستم هم چقدر جالب آیات قرآن رو بخونی میگه وقتی میخواد به سمت نماز وضو بگیرید اول نه نم صورت بشو دستاتونو بشویید فغسلوا وجوهکم و ایدیکم وامسحوا ب وامسحو به کن و ارجوله کن. به و ارجوله کن. بعد جالبه. میگه دو, دو جار باید بشیری دو جارم باید محس بکشید امسحو اون یکی. فقصالو بشیری. خب. بعد جالب بخونید ببینید حضرت آدم چی شد. میگه حضرت آدم چون به اون سیب نگاه کرد با صورتش رو چون دست بر سمتش باید دستش رو یعنی می بری به سمت اینا اول متحر میشه از این چه جوری بهتر بفهمونه به اول خودتو بشور بعد میریسی به سمت اینا اینجوری راحت نمیتونی بری آدم اول امتحان پس بده پاک شو خب بعد بعد بری شستشو اصلا برای رسیدن به امامه برای رسیدن به امامه وضو برای رسیدن به امامه صلات یعنی امام بله برای نماز هم بعد بخونی پس نه آره آفی ما دیگه اینو میخوام شما می به زیارت چه بکنی؟ حسلات بکنی می اونجا نماز بخونی نماز زیارت میخونی، قدم ها کوتاه بر برمی داری ذکر میگی تو را نحنو ذکر الله اکبر، ما هیم ذکر همه چیم همه شدن. تو قرآن کریم خدا در مورد حضرت ابراهیم اسحاق و یعقوب و اسماعیل تقریبا مفسره میگن گن حضرت ابراهیم که قطعی خب ایست بزرگ بار دیگه هم خدا خود امامش قرارشون دادیم داریم آیاتی که در موردش و اگر اون واوی که اون سوره انبیا اومده وای و عطف بگیریم 15 نفر از انبیا به مقام امامت رسیدن که قرآن فقط اسمشون رو برده که پیغمبرم بودن امام شدن مثلا ما در مورد اصلا حضرت خضر اصلا ندید پیغمبر که تو قرآن نیست با اون های دیگه میگفم یه مقامی داره که حضرت موسی اول ال دنبالش اون چه مقامی داره؟ هرچند بالاتر از اوست. یه چیزی میدونه که حضرت موسی هم ندونه. های از علم برای او وجود شده که بر حضرت موسی وجود نشده قرآن میگه دیگه اینو بب... بسم الله ببخون. چه کسی به امامت میرسه؟ چه کسی به قرآن میرسه که چی بشه بگید به شوره خودش. بعد ادامه همین آیه وضو چی میگه؟ برید بخونید. میگه خودتون از نجاسات پاک کنید. حضرت فرمود دشمنان ما چیه؟ اجساس تو خدا خیلی جوره به خدا قسم خیلی جوره همه چیز جوره میگه خودت باید بشوری خودت باید پاک کنی حالا اینو حرف داره میزنه بیشترن قسم تو قران سوره شمس 17 18 تا خدا قسم میخوره زمین و آسمون رو یکی میکنه و شمس و زهوها و القمر عزوج تعالی و نهار عزوج تعالی والله شما بعد خودش برای اینکه شما بفهمید تو یه سوره دیگه گفته فلا اقسم بالمواقع النجوم فانه فا قسم لو تعلمون عظیم من به مواقع موقع محل یا مکانه به وجود آمدن نجوم قسم نمیخورم چون خیلی قسم بزرگیه درست یعنی میخواد اینکه توجه جلب کنه سوره شمس خب خورشید دیگه آقا همه اینا رو یکی میکنه میرسه به یه جمله آقا 17 تا قسم قد افلح من زکا ها اونی برد که پاک کرد شست خودش کسیف نمیتونی تو سراتو مستقیم بیرد شیشوهش میزنی میخوری تو درف بازی در میاره میزنی تو گارده از جاده بیرون نمیتونی از پاک بشه من یه مثال زیاد زدم خیلی جا گفتم اینجا توی این پازل سخنرمی لازمش دارم باید دوباره بگم و توضیح بهتر و بیشتری بدم نگاه کنید این لیوان آب فرض کنید تشیه قطعه نجاست شما توش آب بریزید چی میشه؟ یه لیوان نجاست عجب مگه آب پاکی نیست؟ چرا؟ پس چرا اینجا هستم مشکل تو چی بود؟ تو تهارت بود تو پاکی بود حالا میفهم یو تحرکم تطهیر یعنی چی؟ تحرکم تطهیر یعنی چی؟ شما اصلا پاکی تو زاتتونه اصلا خباست و دنسات نمیتونه به شما نزدیک بشه و لا یو مستهو اللل کی به مست قرآن میرسه؟ فقط متحرها بعد کجا گفته متحرون کیا؟ این نمایوری دولا نیوزه و انکوم ریت احل البرد شما هایی فقط قرار شما میفهمید. خب حالا تو این نجاست نباشه یه قطع نجاست اینقدر آب بریزیم ما همونقدر آب چیه؟ پاکی برای همین نگاه کن هدفشو بین, بین چهار دسته شدن چی شد؟ هدفو شهر رو درست انتخاب کرده بود خوبم رانندگی کرد درسته؟ این بهترین حال تو بهشت شهر رو درست انتخاب کرد و بعد رانندگی کرد گفتیم پاکش میکنم می درسته؟ همینا گفتیم، جلسه گفتیم. شهر رو بد انتخاب کرده، خوب رانندگی می‌کنه، خدا وظیفه نداره بفرستش بفرسته بش. برگردن خدا نیست، اما برعکس روایت میگن اونایی که نمیدونستن و خدا ممکنه ببخشه. زال گمره. اونایی که شهر رو بد انتخاب کردن، بد رانندگی کردن، یعنی عبودیت هم نکردن، رانندگی قرب عبودیت باشه، پذیرش قوانین الهی. اینا اله جهنم. خب، این داشته دیگه؟ ببین اون شهر رو انتخاب کردنه میشه ظرف پاک اگر یکی ته لیوانه پاک باشه هرچه آب بریزی پاکی بیشتر میشه. اما آب نریخته کم آب ریخته مقصد خودش بیشتر آب میریختی همش پاک بود اما آدم یه قطره نجاستون توه هی داره آب میریزه هی داره نجاستون بیشتر میکنه این, این وحاوی ای قرآن میخونن ای نماز میخونن آمل هدایتشون شده جواب. و لا یزید و ظالمی نه الا آقای قرآن داره و ننظر من القرآن ماه و شفا و رحمت للمومنیم للمومنی نه للكافری آلا تازه این متوجه شدی مؤمن یعنی چی کافر یعنی چی کافر چیه مؤمن کیه میگه همین قرآنی که نو... قرآن ناپاکشین عوض بالله که نجاستو بیشتر کنه خسرانه بیشتر کنه نه خیل. پاکی اما تو چیه ظرفی داری میبزیم یعنی مسیر هدف و درست انتخاب شده باشه وسیله عبودیت و مسیر عبودیت وسیلت الان رزوانک شماهایید اعلام تو زیاد جامعه چه گفتیم شماهایید تابلو ها شما همین هم دیگه حالا چیه لیوان تمیزه نبا کنید لیوان پاکه پاکه بعضی یعنی اینو توش نجاست میریز خودشون باز محرم میشه لیوانو میشورن باز سال بعد چی کار میکنه دوباره نجا... از اول نه که نجاست بشه خوش نجاست میزید دیگه صحبت آب نی گناه داره میکنه گناه که دیگه آب پاک نیستش که عرق میخوره دیگه وهابه عرق نميخورن چون حکم صریح قرآنه درسته حالا قزووی فتوا داده پوک... یه فکر رفتی ارادی نداره یوسف <تصفح> قزووی یه جوره ارادی نداره گول به میخواست اون گند ملک رو واسمودی کنه. دیالوگ باز حالت دوم پیش اومده. تو لیوانی که اصلا پاکه. گریم پاکه. نجاست بریزی چی میشه؟ نجاست. توش نجاست باشه نجاست بریزی چی میشه؟ اوه. متوجه شدید؟ همینه. الان من یه سوالی از شما می‌پرسم. فرض کنید یه نوشه خانواده. درش محکم ببندید. توش یه قطره نجاست بشه میخوان بنذیم تو آب کر دریا پاک میشه دیگه آب دریا پاک میکنه یه قطره نجاست اون تو بشه مثلا ادرار با. اینو نجاست نباشه پاکش میکنه میش مشو چون تو رودخونه واسه بده درش محتمل بنوصف وسط اقیانوس چه میشه میشه وسط اقیانوس چه چه اتفاق خاصی میگی نمافت چرا چه آیه دیگه قرآن ختم الله علی قلبه کوچیکات دره دلشون محکم بستیم و علا سمقه و علا ابساره هم غشا و غشا یعنی لایه یه لایه کشیده میرم کجا مخابه شیعه محبه اهل بیت یه ویژگی داره چیه؟ اینکه ظرف به ذات پاکه نجس؟ نیست؟ توش بعد آب بریزه هر روز پاکی رو بیشتر کنه سنگین با یه قده پر از آب به دیدار خدا بره میاد چیکار میکنه؟ گناه میریزه توش گناه گفتیم پاکی دیگه نیست نجاسته میرسه محرم میشوردش خودم بوده با مارمزون میشوردش فاطمیه میرسه میشوردش باز گناه فایده نداره. ذاتن نجس نی نجاست میریزه اون تو به پاک میشه توبه میکنه خودم میبخشه عشق بر حسن میبخش شک ندارم شک ندارم منطقه باید قول بده این محرم و محرمی دیگه فرق بگه امروز این محرم تونستم دو قاشم آب بریزم توش محرمی دیگه سه قاشم آب بریزم در مثلا چندین ده هست پا منبر نشسته محرم تمام روزار از بره هیچ فرق نکره هیچ یعنی سم کلا شیئم مسکوره مد نظر نبوده باید هر سال فرق کنم هدف رسیدن به شبیه ولی امعصوم شدن هدف اون نمونه که این کار انجام داده عباس علیه السلام زینب سلام الله علیه شهداء خودمون هر کی تو این دنیا چیزی داره اونا دادن اونا دادن دفتر بنیسن بعد هیچ سعی کنه خودش رو بیشتر از همیشه شبیه بکنه به چی قد آفله من زکاه و قد خواب من همه اون همون و قسم قد آفله من زکاه درست این مرشم هست یا اونا خراب میشه کارشون آزادشون بیخ میشه به هم میریزه که آره اوه ما این مدنظرمون باشه و این قرآن یه خسرانه تزیاد و جل خوب بهتون بدمینه کتیبه تون میام تو قرآن دیدید یعنی مقابل با اهل می‌دی. یکی از بوت آیا ها متوج نکن همه خه حالت اولیش داره تو بتنا آیا تو رو باید برید خسره یه وال ان انسان الفی میگه اومدن حظت هارو پس زدن بعد تشیممون شدن وا ق طفیع دی هم بر او ان هم قدر زله آلو گفتن چ لم یار هم نرا بنا لا نکنن من خاسرین. اگه خدا ما رو نبخشه ما از شیاییم از خسروان زدهایم وقتی هارون رو من سخنرانی کردم اونایی که چنده میرا یعنی چی خارون یعنی علی به یاد داری منو به که جا خود داره منو به اهل سنت هم هست صحیح با بس سند بسیار صحیح دی حدیث منزلت یه چیزی که خورشیدشان یه روزتون قائم کنی اینو نمیتونه قائم کنه چه مثل مباهله حدیث منزلت نمیشه نه حالا یه نکته اون روز علس آدم خیلی پدر سوخته بوده تهش بوده دیگه تو بغزی که برداشته خب تو اون بغزی که اجازه باید کی به دنیا بیاد زمانی که این امکان براش فراهم باشه بهترین زمانی که بهترین زمانی که بر جا... دنیا گذشته همون زمانی که پنجتن با هم روی زمین بیاد بینه بگه آقا چهار دمستان با پنجتن چه فرق داره همه کله هم ن اما یک زمان پیش بوده که پنج تا شما هم زنده بودن شده چهار تا هم باشن ها اما یه زمان پیش بوده که چی پنج تا بوده و یکی از این 5 تا زهرا هم بوده چون او فرق می‌کنه نه پیغمبر نه امامه. شخصیت عجیبی بوده من یک از کسایی که بارها گفتم صبح هم واقعا نمیفهمم دارم با دارم صحبت می‌کنم از ازرازه بارها اعتراف کردم نمیدونم نمی‌دونم چه شعنی داره نمیدنم اما وقتی روزو میکنم میگم نگاه آیه قرآن در مورد اون چیز تایامبر رو با او تعریف میکنه نمیدنم همزمانی هم زمانی با اهل بدی که آیه خاتمی خونصاری مثلا خیلی جالب میفهم خب ببین بهترین ایرانی ها مش سلمان با زمان خاتمی براد ببین حبو داشته بعد تو این دنیاام چی بشه اثبات کنه حبو بشه روز مباهله آقا رسول الله وقتی اونا میدن 400 نفر اومدن دیگه 320 تا نیروی نظامی آوردن 80 تا اخوند آوردن اخوندای مسیحی‌ها اومدن و آقا رسول الله اومد مردم جمع جمعیت اینجوری پوشه‌زد که چی شد سکوت محضن بود از آسم خود آتیش به زمین دهن واکنه واسه آقا رسول الله اومد رفت سمت خانوما شکافتن رفت از دستی خانه بگیر بود و بر تو آقای شکافتن شد یه آقای مرد جوانی رو با تو بسر بچه رو بردش گفت ما این اونا هشتاد نفر اومده بودن از بزرگان رو احبار رو اینا بعد ببین چی گفته؟ عبا شدات به سلما به کی گفت برو زیر درخت جاروبه که اش رو بنداز. سایه بیفته ما بیمون جنزی بشیم. چرا به سلمان رو جارو بکشیم؟ تحت کسارو. ایلی جارو چرا عبارو باید برنازه؟ سلمانو من نام. نحن یعنی سلمان تحت کساس نه. اما چقدر جارو کشه این جریانه. هنوزم تو خونه ما مونده. هنوزم تو خونه ما از هنوزم افتخار میکنه. هنوز افتخار میکنه. خوب خوبه بقولای خان خاتمی خوبه خوبه رومیاشو سهیب درسته سهیب رومیه ثاوی بن اون زمان می خراب کرد دیگه ایشو میگه این ای اروپایی ها بلاخره این آدمیشا نیستن خب گفت خوبشونو سهیب میده می داستان صقیفه کاملا اون طرفی بود یا خوبشون میشه یعنی خدا واسه شرط تو فراهم بکنه که یا خیلی خیلی خوب بشه یا خیلی خیلی همینش اما دست خودت میخواست بپذیری میخواست بپذیریم بعد جالبه ابا عبدالله نشون روی این زانوش امام, امام حسن رو نشستن این خیلی جالب تاریخ نقل کرده میگی امام حسن برگشت به آقا رسول الله نگاه کرد گفت نفرین کنم گفت, گفت کجا میریم بچه بود دیگه گفتم میخوام بریم اونجا قرار اینا میگن شما بر حق نیستید ما هر دلیل استدلال عقلی آوردیم اینا نپذیرفتن خدا گفته فب تهل برو مباهله کن قرار نفرین کنیم نو موسی فرین نفرین کنم شروع کنم آقا رسولو گفت تو حرف نزنوس که خدا به تو حساس تو قرار نیست نفرین کن تو قرار ببخش تو قرار اون در وسیع الهی برای ورود باشه هیچ نه اونا هم زدن در رفتن گفتن حاضرم جزیه بدیم تا قیافه ها رو نگاه کردن دوتا به سر یه خانمی مرد جوان در رفتن گفت تو برای بباشی تو خود اینجور خواسته خوب خوب, خوب محبت من احبکم فقط احب الله و من ابغزکم فقط ابغزالله زیارت جامع یه حکی شماره رو خب به خدا شماست. مگه میشه آقا خدا تو تو گفتی اگه خدا رو قبولشی شیطان ملعون اگه تو قبول میداشتی خدا میگه این کارو بکن تو اینو این کارو انجام بدی الان خدا میگه سجده کن به گربه بهش خود شیطان سجده کن خدا میگه می تو میدونی حکی تو بگی نه اداش بود کینه برداشت نسبت به این 14 نور الهی روز اولم بلای دروغین گفت منطقه میخواست چیکار کنه خوش میخواست به خدا نزدیک بکنه مثلا فهم که با این کارا مثلا میتونه خدا رو دور بزنه اخلاقا هست دیده میشه تو بعضی از آدم تو لبله پایین ترش فهم که مثلا میتونه نه مسیر همینه یه آیه خیلی خیلی خیلی قشنگ داریم اینو براتون تفسیر بکنم ارزم تمام خیلی زیباس میگه من جابل حسنات من یعنی کسی که جا ع... بل به وسیله چی؟ حسناته. میگه هرچی با حسناتش بده، یعنی با خوبیایی که انجام داده حسنه، سیعه دیگه. خوبی، گناه. ببین، ما کار خوب انجام میدیم یا نه؟ قطعاً. همین داریم ثواب میگیریم. همین الان داریم ثواب میگیریم. خب این ثوابه همیشه میمونه؟ نه سری میذاریم فاتحهشو میخونیم. یه نماز با حال میخونه، میاد بیرون یه توهینی به همسرش. دلیلش میشکنه یه نگاه نامربوط میکنه طرف آقا رسول الله یکی از اصحابش گفت لا اله الله بگو دنیا چی میکاری کاری با یه درخت تو بهش بم گفت اوه یا رسول الله اینقدر باغ داره تو بهش من خیلی زیکر لال خبر نداری یه خرابکاری میکنی آتیش میفته تو اون باغ و چی فاتحش خونده میشه میره پس خوبی رو ما میتونیم ببین چقدر جالبه نگفت حضرت خداوند متعال نفرم من, من ارسل ارسال کنه حسناتش میگه چی بیاد یعنی با خودش باید چی چیکار کنه بیاره یعنی حسنات رو حبسش کنی برس لازم من بگی خرابش نکرده بشی خیلی کار سختی الان طرف میره از این کشور خارجی مثلا فرض کنید از جنسی وارد میکنه خب بخیر بعد هندیه میگه آقا من این تحویل تو بنبعی یه ملیار تون درسته؟ بندر عباس تحویل بده چقدر میگیره؟ بیشتر کمتر؟ بیشتر؟ یک داری بارو میاری من جا هم؟ بله هسنا میرستون اسمان میشه یک و مثلا میاد جلوتر میاد تا قم. کاشون قم. تهران مثلا یک و افصد مثلا مثلا جا همجا عدد باز خودم خب یعنی بیشتر زیاد یه چگاه میکنه؟ میگیرید. چرا؟ چون جا اول حسنات. یکی بیاری ارزش داره تنها چیزی که شما مطمئنی با خودت میبری چیه؟ خب برده به تو. مطمئنیم اینو با خودم میبرید. مگه نه؟ این اینو مطمئنیم. ممکنه یه روز نماز رو خرابش کنیم. ممکنه یه روز روزه هر رو خرابش کنیم ممکنه یه دلی بشکنی ممکنه اما هر چه هستیم خدا قبول داریم مسیر تو رو قبول داریم قبول داریم تو گفتی باید بری سمت این شهر اون شهر رو قبول داریم خودمون رو نگرفتیم می‌بریم اینو قبول داریم منطقه خراب کردیم دیگه شیتون رفت تو جلدمون گاز گذاشتیم 120 رد کردیم قاچه‌ش کرد خدام جریمه میکنه اونجا ادیران هم را نگه الان میکنه به خاطر روز ایده قدیر نصف خلافیارو بخشید یعنی آقا محرم میبخشن و خلافیارو میبخشن و بعد شو بید بریم خلافیامون صاف کنیم خلاف کردیم بید بریم من جا عبر حسنات اینو مطمئن نمیبریم به خاطر همین اینو دست میذاریم اینو میپرورونیم هم و احب من بونه میگه من احبكم فقط احب الله میگه اگه کسی ش... کس که شما دوست داشته بشه خدا هم دوست داره بعد سوره مائده میگه يحبهم ويحبونه من اونها دوست دارم چون من اونا منو دوست دارن که منو دوست دارن دوستن بیت دوست داشتن ببینیم زیرات جامعه یه جمله بعد آخه شرحش طول میکشه برای اینه خیلی چیزا پیش میاد میگه الوهي و ربي انت قلت في كتابك تو تو کتابت گفتی من جاء بالحسنات هر چی بیاد با حسناتش وليس لی حسنات فحسنای ندارم خراب کردم اعتراف میکنم إلا بوکا القتيل الابراط جزء اشکی بر حسین اینم دارم مطمئن بوکا القتيل الابراط مولای یا مولا رب المشرقين والمغربين ای خدای مشرق و مغرب ها دو مشتوق دو مقرد. لیسلی شعر. کیچه نم. الا خب مولایل. بگید. حسین. یا رب الجن و الناس. لیسلی شعر. الا خب مولایل. عباس. این هایی که دارم که. با این میام. بقیه چیز هم هم چی که هم کنم؟ درست میکنم. محبت لیوان پاچه هست. نجاستم چه لیوان اما بنام برای اینه که اینو پاکش کنم دوست ندارم اون دنیا ما یه سرفکن دیگه هر اینجا داری تو برز جنب برزخین اشیه ها بود کار نکرد این ها دارم صافش میکنم باشهش خوابوندن باید پایش نه کونولنا لنا اینا بلا تا کونولنا میگه کامل و زیارت یک کتابی که انقدر مبسطه که مثلا یه حدیثی در نرمو کنم یعنی طریقش طریق کامل و زیارات خب روایت این کتاب بخش امده در مورد زیاراته بخش امده ایش یعنی خیلی جانب. در مورد یکی از چهار در محصومه کی؟ و سباب زیارت بود چرا؟ چون سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم اینجا معنی پیدا کرد قیامت در اون معنی پیدا کرد در اونجا میگه که یه ادهی نشستن مشغول آن. درای بهش باز میشه همه خوره میخوان برن تو بهش دره بهش باز میشه دیدید دید یه جای تجمعی هست یه درهای اونگان نمیدون درهای بهش میگه یه ادهی مشغول گفتگوه اصلا توجه نمی کن. باید برم اون سریهکاریدم می صحبت میکن. بعد میگه که نمیاد. حوریان هووریان و بهشتین دم در صداشون میکنن یه بیای تو میگن ساکت ساچ ب میش موضوعشون موضوع صحبتشان میکنین از حسین از پاکی میگن از تطهیر میگن از طهارت دارن میگن از نور دارن میگن یه بهشت دارن توی همه چی توی چرا چون این جلسات اثر میذاره کارات یادتام درست میکنه یعنی یکی میتونه بیاد توی جلسه ابوالله بشینه و برای او عشق بریزه و موددت اثر روش نزاره ما یه محبت داریم یه چی موددت محبت تو قلبه موددت بروز پیدا میکنه یعنی بعد اون محبتی که نشونش بده میشه موددت درسته چی فا؟ چی خواست؟ مودت فلغوروه گفت بروز بدیدیم محبتو آه من دوستت دارم اما حالا دستاتو بستن دارم میبرم من کار امکام می‌کنم؟ نه نیست هر دوست داری حسینو؟ بله باید شمشی بکنیم بجنگیم مودت دستان سر اینه بعد خودم رو برسونیم به این مودت یعنی محبت رو برسونیم به چی؟ به وده برسونیم بریم به سمت یعنی به عمل برسه افتخار کنن اهل ما روایت داریم که در آن دنیا در محشر در روز قیامت برخی از شیعیان هستند چه چه باعث یعنی اصلا لول خیلی بالاست معصوم می‌فرماد برو اونجا بعضی‌ها همینش زیاد... آویزونن یعنی هر جا میدن نمیتونن مثلا فکر کن یه شیعهی رو بازن تو اون سهره مشون تو رو خدا. و یا یکی که دفته کنار یه آقای بزرگی بایستاده بقیه دارم بهش میگن مثلا اینه چرا میخوایم اون پایینیه باشه؟ اصلا آرزوی ما چیه؟ و من خیر اعوانهی و ساره. مثلا اون بغل باشم شونم به شنن بخوره و یه چیز دیگه است چقدر ما میگیم یا اللهی تنا کن نام ای کاش ما هم میبودیم ای کاش... خیلی ارزش داشت بیایم اینجا یاد بگیریم که اینجا مگه میشه که حسین دوست داشته بشه باید هیاد من نظر نفهمم مگه میشه اصلا کسی حسینی باشه حرف زور قبول نمیکنه مگه میشه که ما حسینی باشه مثلا نمازش درست نشه داره هی تو روزه ها آقا وقتی داشتن نماز میخوندن مثل درگبار مثل تگ بارش تگرگ برشون تیر میباریدن مگه میشه مگه میشه که بیاد تو روزه از حضرت یاد نگیره هر چه بیشتر به ولی مصوم شبیه شدن رو اون ورقه امتحانی که نمرش 23 باید ایل سعی کنی شبیه چی او بسی ببین ادای این کار رو در آوردن عجب عجب کاروی جوزع گفتم سخن را به آبس گفت آبس میشه تو اول بری بجنگی تو آب رو می‌کشتیش اینم رفیق جینگ هم بودن گفت مثلا امروز هم نوبت منو خوب امروز من کشتشون هم ببینی حالا اون که نترسن مثلا آبس میره دیگه پیرنجو در میاره ذره شو در میاره بعد میره در میاره به زمین هم در میاره میگه بابا این گوشته بیاد جلو برگش گفت چرا از من خواستی من زودتر دفعه گفت ببین اون آوارو نمی‌بینی گفت او امروز به خاطر از دست دادن یارانش قم به دلشمه میخوام در قم به دل آمدن هم شبیه او شدم تو رو خیلی دوست دارم میخوام تو اول بری کشته بشی کشت ببینم خب توی داغ دیدنم شبیه او بشم میخواد اینه ورق امتحانیه بشه ولی به مرحله میرسه همه برقار جمعی کنن میگن میبرن زیر نمودار همه نوران بودن بیس درست یاد؟ همه نمرار میدن می بیست کار به جایی میرسه که امام معصوم ولی زمان امام زمان میفرماد به ابی انتم و امی پدر و مادرم به فضای شماها ها پدر ایشون امام معصومه چرا؟ چون میگه همتون شدید کی؟ حسین من دارم میگم به ابی انتم و امی یا حسین همین شباهت اینقدر دیگه نزدیک شده میگه در مادرم به فدار شما و علال ارواح حلتی و برآن روحایی جه حلت حل شدن به فنایک فنا یعنی درگاه از دره تو رد شده مثلا. گفتم بارها گفتم خیلی مثال خوبیه نمک از دست مرکاغذیم تو رد کنیم بری زروش میبونیم آب رد میشه نمکو تو آب حل کن از دست مرکاغذی از صافی کاغذ میشه رد میشه نمک وجود تو بیاری اینجا آب براغونه اولونو به کرن و شیرین حل میکنن به خودمون و بریم به اون سمت که خودمون هیچ شبیه کنیم هر کار میخوام بکنیم معاک بزنیم آقا من این کارو میخوام بکنم من جواب این باور بدم امیرالمومن بود جواب میداد بود جواب میداد بود جواب میداد ها بگیم دیگه یک نمونه خوب یکی کسایی هم که توی امتحان چی شدن موفق شدن الگو قرار یادت باید به نظر ما قرار بگیره خودمون شبیه کنیم محبت رو به مودت بکشونیم به ودت به عمل بکشونیم اون موقع خیلی میارزه میخرن خدا شو دور یا الله میشدن علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل حضرت فرمود خب بعضی از علمای امته من علمای واقعی نه بدی خود وهابيون هم به خود علمای امت میگن ها میگه که اینا کار کردن نفسشون حسبا من انبیاء من است؟ چرا؟ چون اینا ندیده واش. ما امامی... امام امام شما ما که ندیدیم خوشبخت ما کسی بود. یؤمنون بالغیب و یقيمون ندیده اینا صلات رو برپا می کنن. گفتم صلات یعنی چی؟ بابا منظورم اهل بیت. اینا ویژگیشون اینه که ندیده صلات رو برپا اوم. بودن کسایی که میدیدن اقامی اقامه صلاتم گرفتن. بعد قدیر این بیشی گیری درشن بباشه و میتونیم اونا باشیم چرا نباشیم فرصت کشتی حسین ابن علی هر رو سوار کرد نه چب و جونورم سبور کرد همه رو کشتی نجات مثلا اهل ویتی که سفینت نوم ان حسین اصباح و هدا و سفینت نجات راه نجات حسین اصلا خدا یه راه گذاشت برای اینکه که همه برگردن اصلا ببین حسین یعنی حسین یعنی خدا ارحم راهمین است معنی حسین یعنی خدا ارحم الرحیمین است بروز تجلی ارحم الرحیمین خدا یعنی حسین یعنی حسین یعنی حسین هیچ یعنی یعنی شکی وجود نداره با عشق و علاقه به این جلسات لذت به خدا بالا خاص این سقف دعا کنید برای همه کسایی که بانی این جلسات بودن خدا بیا هموزشون همشون آرزو داشتن آرزو داشتن عشق میکنن الان جلسه بعد چند سال مثلا این طرف بنانگذاره اون جلسه بوده الان مردم میرن میان هنوز دراموزش همین تو کنترل میندازه سواب داره ما هم بانی بشیم بلا یه نخود شده بین تو توی ناش من همیشه گفتم ببینید درامنتون چقدر تو ما انتومن بگید یک درصدش من دمه یه درصد میذارم کنار برای چی؟ برای کمک به مثلا بر وزای حیرت الان خصوص من پیشادم برای امام زمان خیلی وزای قریب و مظلومی ابا عبدالله قرمش بدم بعدش توپه. خیلی قریب و مظلومی یه درصد بذار یه میلیون حقومی ده هزارتون یه درصد بزار. خیلی ازش خودش مال مالت و شریک شدید این کار بانی بشید ولی یه نخود میگن وقتی اومدن یوسف رو برای خرید و فروش گذاشتن پیرزره دوتا کلاف برداشو بود پول نداشت کلاف بافتن بود منم خریدارینم یه نوزی یه نخود خود شرکت اللهم عنجل ولی کلپره ولی آفیت و نصر و جعلنا من خیر اعوانهی و ساره و المستشهدين بين يدي الله اللهم ارزقنا توفيق و وبعد المعصيه اللهم ارزقنا شهادت في سبيل مولانا صاحب الزمان اللهم ارزقنا شفاءه الحسيني يوم البرود وثبت لي قدم الصدق عندكم يا ابو الحسن اصحاب الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام صلواتنا